بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع وغيرها من المعاملات كتاب بيوع خريد وفروش و ديگر معاملات البيوع ثلاثة أشياء خريد وفروش همون بي سي چيز ميباشاد يك عين مشاهدتين فجائزون خرید فروشه یا فروش چیزی که حاضر است مشاهدتین ای حاضرتون یعنی چیزی که حاضر است فجائزون این معامله جائز است البته زمانی که شرایط رو داشته باشه یک اون کالا کالای پاکی باشه که بشه ازش نخ برد قدرت تحویلش داشته باشه ایجاب و قبول از فروشنده و خریدار انجام بگیره پس فروش چیزی حاضر پس این نوع به جایز است و به عوشه این فی به ذمتی اذا وجدت صفتو علا ما وصف به نوی دوم فروش چیزی که موصوف در ذمه هست وصف شده در ذمه منظور چه اون محصوف زمه همون به سلم هست و پیش فروش هست این هم میگه جایز است زمانی که اون صفت بر همون شکری که وصف شده موجود باشد واجد شرایط باشد خب موصوف فی ذمه این وجود نداره ولی وصف شده اگر به اون جوری به اون طوری که وصف شده باشد یافت شد جائز است سه و بي او عین غائب لم تشاهد سومین حالت یا نوع این است فروش چیزی که غایب هست تو مشاهده نشده فلا يجوز این هم جایز نیست منظور از جواز یا عدم جواز اون صحیح بودن عقد معامله است یا باطل بودنش لا اون عقد باطل این قرارداد معامله باطل و یسحو کل طاهر منتفع بهی مملوکن و جائز است فروش هر چیز پاکی که منتفع به از او نفعی برده میشه مملوک در ملکیت باشد ولا یسحو بی عین نجیستین ولا مال لا فی و همچنین صحیح نیست روش چیزی که نجس است معنید خمر شراب و همچنین چیزی که درش منفعتی نیست بله فصلون فر ربا فصل بعدی در بار رباست والربا في الذهب والفضة والمتعومات نقربا في شميات دالتلا ونقر ومتعومات خردنيها ولا يجز بيع الذهب بالذهب جارزنيست فروشة تلا بتلا ولا الفضة تي. كذلك وانتونين نقر بنقر إلا متمافلا نقتن مجرئن إن كهم أنهم وزن باشا مثل به مثل باشند دو نقدن باشن دست به دست باشه معامله وامی نباشه کسی طلا رو در مقابل تلا داد یک هم وزن باشند دو نقد باشه دست به دست باشه هم نقره ولا بعوا ابتاعه حتى يقلبه و همچنین جایز نیست فروش آنچه که آن را خریده است تا اینکه اون رو تحویل بگیرد قبضش کند بهدستش برسد ولا بیع اللحم بالحیوان و همچنین جایز نیست فروش گوشت در مقابل حیوان برابر است که از جنسش باشد مانند گوشت گوسفند در مقابل گوسفند یا از جنسش نباشد مانند گوشت گوسفند در مقابل گاف اما خود فروش حیوان به حیوان جایزه و یجوز و بیعن وحبید الفقباتی متفاضلن نقدن و جائز از فروش تلاع در مقابل نقره متفاضلن یعنی هم مثل لا باشن یکی بیشتر باشه یکی کمتر باشه یکی دو کیلو باشه یکی یک کیلو باشه ولی شرط به این که نقدن باشه پس اگر هم جنس باشند باید هم اندازه باشند و نقدی اگر هم جنس نبودند یکی طلا بود دیگری نقره اینجا اضافه گرفتن موردی ندارد به شرطی که نقدی باشد و کدالک المترومات و همچنین مترومات خوردنیها لا یجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدن جائز نیست فروش یک جنس از این متعومات به جنس دیگر جائز نیست هم جنس با هم جنس مگر اینکه متماثل باشند هم اندازه باشند نقدا و نقد باشند پس لا يجوز بيع الجنس منها مثلی الا متماثلا نقدا جائز نیست فروش هیچ جنسی از این مطعومات با هم جنس خودش مگر اینکه هم مثل باشند و نقد مثلا فروش گندم به گندم جایز نیست مگر اینکه وزنشونیه یکی باشه و نقدی باشند جایز نیست فروش جو به جو مگر هم وزن و نقدی دست به دست یا مثلا برنج به برنج جزو و بقولجنسی منذهب غیریی متفا نقدن <تصفح> اما در متومات جایز از فروش یک جنس با جنس دیگر متفاضلا یعنی اینکه یکی بیشتر باشه از دیگری نقدن اما ولی نقدن باشه. مثلا شما خورما رو بدید در مقابل گندم یکی پنج کیلو باشه یکی دو کیلو مرودی نداره متفاضلا اینجا موردرودی نداره ولی نقدن باشه ولا يَجُوزُ بیع غَرَرِ و همچنین جائز نیست فروش غرر آنچه که نامعلوم هست یا به طریقی درش فریب هست انده فروش لباسی از لباسها جمع مشخص نیست آخه کدومیک؟ یا مثلا فروش پرنده در هوا، فروش ماهی در دریا، پس فروش فریب، غرر فریب رو میگند نامعلومی رو میگند جا، جا، مجموع بودن رو میگند فاصلون خیارون بیعی خب، معامله رو خوندیم، ربا رو خوندیم ربا اینه که در اموال ربوی که تلا نقره و مدعوماتی بودند باید همجنس باشه زمانی که همجنس بودن باید هم اندازه باشند و نقدی اگه اضافه باشه ربا میشه خود ربا دیگه من اضافه گرفته نه ولی اینجا در اشیاه خاص هست با این توضیحاتی که هم شد فاصلون خیارون به به خیارمون اختیار هست والمتبايعان بالخیار ما لم خریدار و فروشنده اختیار دارند مادامی که از همدیگه جدا نشده باشند پس تا زمانی که از همدیگه جدا نشده باشند اختیار دارند از معامله بر بگردند اینو میگند خیار بی ولی این خیار مجلس میشه میگن اختیار مجلس یک خیار شرطی هم وجود داره اون اینه که شرط بگذارن تا دو روز من نگاه میکنم دیگه اختیار دارم برگرد خریدار یا فروشنده هر کدر شرط کرد خلاص دیگه اون اختیاره رو داره اونی میگن خیار شرط و لهما ایشتارت الخیاره اینوی باره الى ثلاث تاییان و خریدار و فروشنده اختیار دارند که شرط بگذارند تا سی روز خیار شرط بگذارند تا سی روز آقا من تا سی روز نگاه میکنم خواستم نخواستم نمیخورم هر کدوم که گفت فرقی نید و اذا وجده بالمبی عیبون و زمانی که در کالا عیبی یافت شد مشتری حق دارد ما اون مبی رو بر بگردند. بله که عیب هست و در قیمت تأثیر دارد غرف اونو عیب حساب میکند ولا يجوز یجوز به مطلقا الا بعد بدو و صلاحها. و جائز فروش ثمره فروش میوه مطلقا یعنی بدون شرط قط کردن اون میوه و باقی ماندنش پس جائز نیست فروش ثمره مطلقا مگر چه زمان بعد از ظاهر شدن صلاحیتش مگر مثلا از اونایی بود که صلاحیتش زمانی نیست که رنگ بگیره سرخ که شد مثلا یا زرد که شد این صلاحیت آشکار شدن صلاحیتش هست خلاص اون موقع دیگه میتونه اونو بفروشه. اینجا علامات صلاحیتش پیدا شده. و مثلا را سفت سفت اگه نرم شده بودیم علامت رسیدنشه پس جایز نیست فروش ثمره مطلقاً یعنی بدون شرط قط و بدون باقی ماندنش روی درخت مگر بعد از آشکار شدن صلاحیتش پختگی اش ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن وجائز نس فروشه اون چیزایی که در شون ربا پیش میاد جنس خودش زمانی که خیس هست مثلا فروش انگور به انگور زمانی که تر هست جایز نیست یا رتب به رتب پس ولا به امافیه ربه به جنسی و جایز نیست فروش آنچه که درش ربا هست با جنس خودش رتبن در حالی که تر هست خشک نیست الا لبن مگر شیر میشه یه از پیمانه شیر رو به اندازه خودش داد ما نیست بلی نمیشه یک کیلو آه. مثلا انگور رو به یک کیلو انگور داد چون خیست تر هست خشک نشده کشمشو میشه داد بلی انگور هنوز تر هست رتبا یعنی بود تر بودن خشک نبودن این به او معامله سلم پیش فروش و یسیح حالا و حالاً تکامل فی خمس و شرائد. و است سلام یا پیش فروش نقدی و اجلدار در اون مسائلی که یا اون چیزایی که پند داشته باشد. بله اینا شروط مسلم فی هستند. صحیح هست اصلم و حالا. البته این حالنش یعنی فروش فوریش فيه فوری اش مسلم فوری تحویل بدید فقط شوافه میگن جازه نه احناف مالکی و حنابله میگن شرطش امینه که عجلدار باش مثلا یک ماه بعد حالا در مورد عجلش با همدیگه اختلاف دارن در هر صورت ولی عجل دار باشه. پس اون شرط چی هستند? که مسلم فیه داشته باشه. یک يك ان یکونه مضبوطا به صفت. دقیق صفاتش گفته بشه. ان یکون جنسا لم یختلت به غیره. جنسی باشه که چیزی دیگر باش، مخلوط نشده باشه. و تدخله النار لإحالته روی آتش گذاشته نشده باشه برای تغییر دادنش مانند نان نان روی آتش گذاشته شده اما مثلا اگر روی آتشش بگذارن برای جدا کردنش برای صلاحیتش برخی از چیزا رو برای اینکه از همدیگه متمایز کنند روی آتش می‌ذارن اون داستانش متفاوته و ان لا یکون معینا اون مسلم فيه معین نباشه یعنی اینکه شخص بگه پیش فروش کردم تو را این پارچه را با این برده بع بله. چون تعیین نباشه معین مشخص شده نباشه اون با این یا اون ولا من معین و همچنین مسلم فی از یک چیز معینی نباشه مثلا بگو من از شما خورما میخوام بعدا یه روسه کوچیک هست اسممون روسا رو بگیره مال فلان روسا خو ممکن تو این روسای ان چیز گیر نیومد آه؟ پس از معین هم نباشه چرا چون اطمینانی نیست که این چیز اونجا یافت بشه یا نه پس اگر پیش فروش کرد در مورد خرمای روسای کوچیک شما را الان پولا رو میده بفروشنده که یک مهبد از فلان روسای کوچک بشقرمه های معلوم و خلاصه اون شرط های بعدی رو با داشته باش این میگه صحیح نیست ثوما ل صحت السلام فيه 8 شروط سپس برای صحیح بودن عقد مسلم فیه هشت شرط نیاز هست اونا شرط های مسلم بودند حالا شرط های صحیح بودن عقد مسلم چه هستند یک این یصفه بعد ذکر جنسه و نوعه به الصفات الاتی اختلف به الثمن بعد ذکر جنس و نوع اون صفاتی را که در تغییر قیمت تأثیری دارند باید اونارو رو بگه اون وصفهایی رو که در قیمت اثر دارند اون صفاتی رو که در قیمت اثر دارند بعد از ذکر جنس و نو اونا رو بگه دو اید قدره بما بماین فی عنه اندازش اش رو ای ذکر بکنه که جهالت ازش برداشته بشه درش جهالت نماند. سه و این که اما ذکر وقتم محلهی اگر مأجل بود، یعنی فوری نبود، حال نبود، وقت محل اون رو میگه. چه وقتی اونو تحویل میده به خریدار؟ و این یکونه موجوداً هنده الاستحقاق فی الغالیم اون مسلم فیه، اون چیز، کالا، هنگام استحقاق، هنگام تحویل، غالباً موجود باشه پنج و این یذکر موضع قبضه، جای تحویل گرفتن باید تایین بشه اگه من این وسائلو تا کجا میرسونم، تا کجا آورده بشه، اینه به درون قرار قرارداد معلوم شد جهالتی برای درگیر شدن نماند در هیچ چیزش و یکون يكون الثمن معلوما ثمن معلوم باشه درهم دینار دلار ریال و این ويتقابض قبل التفرق رأس المال رو خریدار پول رو به فروشنده تحویل بده قبل از جدا شدن از مجلس قبل از تفرق قبل از جدا شدن بله جوری نباشه که هم پول وام وامی باشه و هم اون جنس که خب قرار عجل داره دیگه اون بله و این یکون اقدسلمی ناجزن لاید خلح و خیار و شرط قرارداد سلم ناجز باشه این قطعی باشه خیار شرط درش نباشه خیار مجلس که داره تو خود مجلس برگرده مشکلی نیست ولی خیار شرط نمیتونن بگم آقا من تا دو روز نگاه میکنم این خیار شرط نباید درش باشه بعدمون با لحظهک که نشستن در مجلس معامله رو تمام کنن